چهارمین عادت ضد تنبلی سیستم 43 پرونده بهانه که از میان می رود فراموش می کنم انجامش دهم ده چون سیستم سازماندهی مناسبی نداشته باشید از یاد بردن انجام کارهایتان به سادگی امکان پذیر است قبلا در مورد اهمیت مکانیسم ثبت ایده ها سخن گفتیم اما ثبت ایده یک چیز است و به یاد داشتن زمان آغاز بر روی آن کار یک چیز دیگر. ترین راه برای به خاطر سپردن همه چیز همان پرورش عادت 43 پرونده است. دیوید آلن نخستین کسی بود که به تفصیل درباره سیستم پروندهسازی هوشمند سخن گفت. اما مرلین مان بود که تکنیک 43 پرونده را برای به خاطر سپردن کارها ابدا کرد. می‌توانید برای مروری بر این تکنیک به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید. wwwbeatly خلاصه این مطلب بدین شرح است که تکنیک 43 پرونده یک رویکرد نظاممند برای دنبال کردن ایده هایتان به شما ارائه می‌دهد. برای شروع شما یک قفسه را به دوازده پرونده اصلی برای دوازده ماه سال در نظر می گیرید. سپس باید سی و پرونده دیگر را که هر کدام نماینده یک روز از ماه است را بدان اضافه کنید. حاصل جمع همه اینها چهل و پرونده می شود. سی پرونده را باید به ترتیب روزهای ماه میان ماه جاری و ماه آینده قرار دهید. و پشت آن یازده پرونده مربوط به 11 ماه دیگر سال را بگذارید. طی یک مرور هفتگی یا ماهانه باید یادآوریهایی برای دنبال کردن کارهای خاص در تاریخ‌های معین قرار دهید. بعداً در این باره به تفصیل سخن خواهیم گفت. بعد تنها کاری که لازم است بکنید این است که به این چهل و پرونده هر روز سر بزنید و با دیدن هر یادداشت یادآوری کننده، دست به کار انجام کاری که از پیش برای خودتان یادداشت کرده اید بشوید اجرای این عادت پرورش عادت چهسه پرونده به صرف مقداری وقت و هزینه نیاز دارد اما این سرمایه گذاری به اینکه دیگر هیچ کاری را از خاطر نبرید میارزد کارتان را بدین ترتیب آغاز کنید. 1. بخشی از فضای خانهتان را به انباشتن کاغذ هایی که برای این کار لازم اختصاص دهید. دو پنجاه پرونده برچسبدار به همراه یک قفسه برای طبق بندی آنها بخرید. 3. هر ایده یا کاری که باید انجام شود را یادداشت کنید و آن را در تاریخی که برای آن تعیین کرده اید میان پرونده ها قرار دهید. 4. به صورت هفتگی کاغذ را مرور کنید. پنج برنامه زمانبندی شده ماهانه یا ای برای انجام کارها و پیگیری ایده ها ترتیب دهید. شش با به سر رسیدن هر سال کاغذ های جدید را جایگزین کاغذ های قبلی کنید و کار را تکرار کنید. هفت یک یادآور روزانه برای سرزدن به پرونده مربوط به آن روز بسازید. عادت چهل پرونده مکانیسم ساده ای را برای به خاطر سپردن تک تک ایده ها و کارهای شما برایتان فراهم می کند. وقتی برای دنبال کردن هر کار یاداوری مخصوص به آن را می سازید، دیگر ذهنتان مشغول ایده های درهم و برهمی که به آن هجوم آورند نخواهد بود. در عوض می توانید بر روی کارها و پروژه های فعیلیتان تمرکز کنید و انجام هر کار دیگر را به زمان خاص خودش واگذار کنید.